در دیر مقان آمد یارم قدهی در دست مست از می و می خاران از نرگس مستش مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای سنوبر پست. آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. شمع دل دمسازم بنشست چو او برخواست وفغانز نظر بازان برخواست چو او بنشست گرغالی خوشبو شد در گیسوی او پیچید ور وسم همان کشگشت در عبروی او پیوست بازایی که بازاید عمر شده حافظ هر هرچند که ناید باز Ki ri ke bezhadur ach